شادلی که مدام از پی نظر نرود به هر درش که بخانند بی خبر نرود تمع در آن شیرین نکردنم اولا ولی چگونه مگس از پی شکر نرود سواد دیده غم دیدم به عشک مشووی که نقش خال تو هم هرگز از نظر نرود زمن چو باد بوی خود دریغ مدا چرا که بی سر زلف تو هم به سر نرود دلا مباش چون این هرز گرد و هر جایی که هیچ کار ز پیشت به دین هنر نرود مکن به چشم حقارت نگاه در من محس که آب روی شریعت بدین قدر نرود من گدا حوث سر و دارم که دست در کمرش جزب سیم و زر نرود تو که از مکارم اخلاق آلمی دگری وفای عهد من از خاطرت به در نرود تو که از مکارم اخلاق آلمی دگری وفای عهد من از خاطرت به در نرود سیاه نامتر از خود کسی نمی بینم چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود به تاج خود خودم از رحم بر که باز سفی چو باشه در پی هر سید مختصر نرود بیار باده و اول به دست حافظ ده. به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود